رهای رو به پرسید از او شهریار جهان از آگاهی نیکووت در نهان چون این داد پاسخ که از آگهی فراوان بود گفت و مغزش تهی مگر آنکه گفتند خاک است جای ندانم چگویم زه دیگر سرای خدا سلام از میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شنوندگان عزیز برنامه پنجره های رو به ماه هر یک شنبه شب آقای دکتر فریدون جنیدی کارشناس محترم این برنامه درباره شاهنامه صحبت میکنند و پنجره ما باز هستش در این بها ما هم دیدیم ما سلام آقای دکتر فریدون جنیدی خسته نباشید درود بر شما شاد و پیروز باشید آن ما ها دیدیم ما چند ما بود اگر امروز چهارده هم فکر میکنم ببینید من پنجه دو سال آموزش میدم از روستا کلاس دوم دو دو ابتدایی تو دانشگاه های بزرگ نه خیلی نبود. نبود نبود نخلید. امروز بود؟ دو, دو, دو, دو, دو بود. بود بادم بادم بایی من... که بادم من من خیلی ولی فرزندان امروز ایران همطور که نیاکان خردمند ما بودند از لحظه به لحظه دهش یزدان برخوردار بشن، و یکی از برترین زیباترین دهش های یزدان کرده شما خرشید ستارگانه اینا رو ببینیم و این ما هر شب برای ما یه آرهش دیگر میکند این دریغ از این که ما این عروس زیبای آسمان رو با آرهش تازه نبینیم به نظر من انسان باید اندکی بیتوجه توجه به کار جهان باشه ستایشی ازدان کردن همینی که ما ماه رو ببینیم و به ماه هم درود بفرستیم خدابند اون این آرائش های زیبا می آرائه تا ما ببینیم خرشید هم هم می توانیم خرشید عدد نمیشه نگاه کرد آره، از خرشید میشه بهر برد اما اون خورشید زیبای ادب ما شاهنامه فردوسری میشه نگاه کرد بله. دقیق هم نگاه کرد و توی این برمانو می خواهم از پترون استفاده کنیم. از آنامه فرروسی استفاده کنیم و حالا به خب خودم چقدر کردم تا برنامه شروع شد تلفن های برنامه رو دام که شنوندگان عزیز تماس بگیرن ما درباره بهرام پررگشه از موضوع اصلی صحبت اون هستش. از یه مطلب دیگه بود یه شنونده هفته گذشته یک حرفی زد. ذشن منو مشغول کرد. منم چون حالا مجووری این برنامه هستم سعی کردم قضیری یه جوری بگردم. این صحبت که قبل از این داشتیم با و شما فرمودید که چرا جواب ندادی اون موقع نه جواب, جواب دادید و ابراز اطمینان کردید که دوره کارهای درباره شانوان میشه درباره که خب نشده آره, آره, آره, آره من این رو خودم خیلی ناراحت بودم. الان شما این اشاره کردید قبل از این که برنامه شروع شه به من گفتید من خیلی ناراحت شدم واقعا میگم خیلی ناراحت شدم چرا... چرا این اتفاق نیفتاده چرا در شاعران ما اون کسانی که آواز می و کسانی که زمینه موسیقی هستند، اون کسانی که در تاعت اون کس زمینه تئاتر هستند، کسانی که در هنرهای مختلف، هنرهای تجسمی هستند، سینما هستند، از این استفاده نمیکنند. ببین چرا این اتفاق افتاد؟ آیا دکتر جنیدی، تو را که داشتم میام دام، ماشین روشن بود و شبکه فرهنگ رو می‌شنیدم، صد و شش رو داشتم می‌شنیدم، و موجفم. بله. و دیدم درباره جشنواره جشنواره درباره جشنواره کنم در بود فکر می‌کنم. همشن صحبت میکنن در مورد سینمای گرو بعد میبینم هی hey, صحبت میکنن اونو استفاده میکنن حالا فیلمی در مورد مثلا فلان دوره تاریخشون صحبت میکنن کارگردان داره کار کرده و میخوان اونو مثلا بیارن تو جشنواره اینا من فکر کردم چرا سینمایم اینقدر عقب افتاده و چرا سینمای جهان نمیاد استفاده کنه و چرا ما درست معدف... ما درست معرفی نکردیم علت چی بوده من در یک از کتابام نوشتم که فرمانگون جهان من هر بگاه که پرفقه میشم این اکسا عمل دارم از خانمگان از گرامی هم پوزش میخوام در این از کتاب نوشتم که فرزانگان جهان اون کس رو که بستر گنج نشسته باشد و از دیگران دلیوزیگری کنند او را خردمند به شمار نمیآورند و این گنج پرگوهر این پرگوهرترین گنج جهان فرهنگ ماست و از اون میان فردوسی است. تا وقتی که هنرمندان ما به دنبال دو افزانه های نادرخور ناشایست دیگران باشند بر سر گنج نشسته و از دیگران دریزگری میکنند باور به که اگر هنرمندان ما به شاهنامه توجه کنند برترین، بالاترین کارهای سینمایی، تاعت و موسیقی از شاهنامه برمیاد بلکه شاهنامه آینه تمامنمای زندگی و فرهنگ به خرد نیاکان ماست. از هر چیزی که شما بخوایید در شاهنامه هست من خوب خب مردم به شاهنامه توجه نمی کنند در این سالهای اخیر. خب من فکر فکرم همین برنامه دریچه باشه به روی افتاب شاهنامه مردم توجه کنند. کن. در حقیقت کار خودشون رو بالا می به خودشون ارزش میدن اگر بیان از شاهنامه فیلم تهیه کنند. این به شما می که فیلم کردن از کردنشانامه میدونید در تاریخ سینما فیلمی رو تهییه کردن به نام بنهور و این فیلم پرخشترین فیلم جهان بود. باور ب سرمه که اگر بخواند از شنامه فیلم بسازن از بنهور برتر باید بسازند نه یکی نه دو تا دهها و صدها فیلم اون منظره هایی که در نامهنییاکان نام ما تصویرگری شده و بعد شا... تع و با گفته رو بلند آسمانی خودشون را رو آرایش داده اینها بارها و بارها و بارها از بنهور برتره اینها مثلا فرض کنید که شما میبینید که یک خواننده بزرگی به نام باربت در زمان ساسانیان بوده خب چی میخونده چی کار میکرده کدومی از این موسیقی دانان ما اینا رو من سالها پیش در کتاب زمین نشناخت موسیقی ایرانی نبشه ولی کسی توجه نکرده اگر این توجه پیدا بشه در گروه هنرمندان ما از هر رده میتونن که خودشون رو بالا بکشن و افتخار بکنن به کاری که میکنن و شرفدار باشن در بین هم ایرانیان هم جهانیان همش تاثیره من تو این مدتی که در حدود دو ماه و اندی هستش دو ماه و نیم هستش که برنامه رو داریم و در خدمتون هستیم بودن ده هفته هستش که در خدمتون هستیم آقای دکتر هر بار شما درباره شاهنامه صحبت میکردید من همشون خلاص زمینه کاریم هم هم تئاتر هست هم سینما هست هم تلویزیون هست من میشناسم آلا تا حدودی این معقوله رو میدم که همش تصویر داره من میده یعنی خود این قصه بهرام پورگوشه است بهرام چوبینه بهرام نظر... پورگوشه است من میگم این خود این خود این خود اصلا این ماجرا خود این افسانه خود این قصه خود این تاریخ اون چیزی که حالا نگاه شما هست به نظر من همش تصویره این میگم میکنه سپاهی که همه چهل سالند خود این حسن قستاست خودو فکر کنید یا مثلا حمله ای که میکنه یوریشی که میبره اتفاقاتی که حالا در بخش های مختلف حالا فقط در مورد بهرام پورگشن صحبت نمیکنیم در این مدت صحبت کردید من خوندم شاهنامه رو همش تاثیر ما میده من میگم اون آقای تجسمی میتونه استفاده کنه همه مونر هامون موسیقیمون میتونه استفاده کنه موسیقی آبازیمون میتونه استفاده کنه سینمامون میتونه استفاده کنه تاعترمون. این باید این اتفاق بیفته به نظر من میافته کم کم میدونه که پس یکی شب سرد دراز نمستانی دراخره سفیده سهر میدمد و مردم فشمشون به این فروغ سهرگاهی و این برخشش مر تازه میشه من امیدوارم که این همین نسیم سهر باشه که وزیشش آغاز شده و به به جهان به روح و جهان و جهان هنرمندان ما و همه ایرانیان و روی بکنیم به این گنج شاهگان شاهنامه بهار آمده باید استفاده کنیم این بهار به ما میتونه خیلی کمک کنیم انشاءال ما در جشبارهای حالا فجرمون در جشبارهای مختلفی که داریم ببینیم و قرارم نیستش آی دکتر جمهیدی که همه بیایم حالا نگاه تاریخی فقط به این قضیه داشته باشیم میتونه تو زندگی امروزمون هم باشه یعنی قسمت این قصه ها در زندگی امروز در زندگی معاصر استفاده کنیم از ماجره هایی که در شاهنامه اتفاق میفته در زندگی معاصر ما همش فکر می‌کنیم که شکل تاریخی باید باشه میتونه شکل تاریخی هم نباشه دیگه اون روحو بگیریم از شاهنامه بیاریم در قالب امروزیش. بله غیر از تاریخ هم مطالب دیگه در شاهنامه فراونی که به زندگی مردم نظر داره شما میتونید از اون سهنه ها انتخاب کنید و فیلم بسازید یا آهنگ بسازید منش... بسرم مثال چی؟ مثال رفتن بحرام و گور به خانه, خانه یه رستایی ببینید این رستایی چطور از او پذیره کردم چه کار این بحرام و گور یه روز گرم و بود تشنه و خسته میرسه به یه رستا به یه تر خ... خونه میرسه و یک زن روستایی که کوزه آب رو دوشه شد و داره وقتی که به بحران می روی خودشون می پیوشیدم من خودم در ایام روزواره حتی پونزشون در سالگی بیست سالگی در خراسان دیدم وقتی که زنان روستایی به من نزدیک می چون من در از خانواده برتر بودم. اینا روی بینیشون رو یعنی چارغت خودشون رو می بردن روی بینی و دهن رو می گرفتن من اون وقت سکن کردم این یک گونه هجابه. بعد ها وقتی که در تصویرهای های رو نیدیم که کسانی که روبرو رو ش دن جلو بینی گرفتن یعنی اینکه ما بادا آب از دهن بر پایین یا تنفس از نفس این یه بوی بد بیاد و اون کسی که روبر رو ه ناراحت بشه و در جلو آتشتان موبدا همین کنیم که یه چیزی به نام پنام جلو بینی و بهمانشون رو می گرفتن. خب اینجا این زن همین کار کرد برای اعترام بعد گفت که شما اینجا به من س میدی سپنج یعنی مهمانی که کسی بیاد در جایی زندگیه این کنه بل با خودش باشه وا مهمان یعنی کسی که مهمان یعنی مان مه باشه یعنی بزرگ خانه باشه شما می که اگر بس... بزرگ خانه کسی که بیاد وارد یک جا میشه بهش میگن مهمان مثل بزرگ خانهست من به خاطر دارم در سن دواز ده ساله یاده سالگی دوازده سالگی که تابستو ما میرفتیم به روستا و خب برور می از روستا و من نمی‌دونم چطور بود که چه کاری من داشتم که لازم بود یکی دو روز بیام شهر و مادرم به من گفت برید خونه بر خونه همسایه جرئت نکرد که کلید خونه رو به من به یه بچه وارد خونه بشم درو باز کنم اینو به خونه همسایه من رفتم در خونه همسایه رو زدم اینا ا فريدو حالا من یازده سالم بفرمایید چطور تنها ما گفتم اومدم مادرم گفته بیام خونه شما بفرمایید بفرمایید دو شبان روز من اونجا بودم مالانتش شاه از من پذیرا کرد و یه کودک 11 ساله. یعنی فرنگی ایرانه. و اینا به شما اون همسایه ما اردبهی بودن. یعنی آزربای ها اینطور. هر کردستان، بلوچستان همه جای یعنی همه جا. ایرانی ها جان خودشون برای مهمون میدن. مقصودی که اون دو روز بچه 11 ساله مهمان اونا بود. یعنی بزرگ خانه اونا بود. همه چیز در آغاز برای من. ده. همه چیز بهترین ها برای من بود. و این رومان هیچ وقت از یاد این اینه که ایرانیان واقعا هر چیز خوب رو برای مهمان میخوان با حالا مه ما میگفتیم قصی بهرام میاد. بله بهرام گور وقتی وارد میشد پنج میدیم به من میگه نه تو این خانه رو به دو گفت زود در آیش سوار یعنی زود داخل شد تو این خانه را خانه خیشدار. اون وقت وارد میشه فوری بره میکوشن اما برای اینکه ام تا بره پخته بشه چند ساعت طول میشه دیگه بنا فاصله یک ام ام در حقیقت اون چیزی که امروز بهش میگیم کلجورش یعنی چیزی که با ام... کشکو خوردن با کشکو پاکستانی همه جا هست البته رسانونامه نامشون با کالوشه یک کالوشه با آین ساخت یعنی روغنبنز کافی داشته باشه پیرتپزی کافیید که نهناداخت خوب و توش مغگر ریخته باشند و کش این به آین همه چیز رو فرام کردند که این فعلا بخوره تا اینکه برای حاضر بشه بسونن که بشونند که و بعد شب بهامم گور نمیگه که من پتشهایی رو این زن اومد میگه شما برای من داستان بگین از این جریان میگه که داستان همه چیز خوبه و مونط از طرف ممین دولت به ما ستتن و ازیت می‌کنن مرچ درباره مالیات حالا سرگذشت مالیات یا هرچی باج و صاب و چی درباره اینکه رفتاری که مثلا تو روستا اینها ما ستم می‌بینیم و از این بابت ناراحتیم خب بهروم گور در دل خودش میگه من اینقدر در فکر مردم هستم حالا مردم از رفتار من ناراحت باشن از فردو ستم بیداد میکنم ستم می‌کنم خب شب اینطور می‌خوبه صبح وقتی که زن روستایی میگه به نام خداوند بیار و جفت دست میزنه به پستان و گاف که به پستان گاو پاسخ نمیده زن به شوهرش میگه که شوهر ای مرد شاه جهان بیدادگر شد میگه تو از کجا فهم میدی؟ میگه شیر نمیده گاو من وقتی که شاه بیدادگر باشه به هنگام عبر نمیده نمی یا سبز نمیشه درخ میوه نمیده گاف و شیر نمیدن به پیش خودش نارهد میشه که چرا اون فکر شفت کرد؟ در نزد خودش از خداوند در حققت بورش میخواد که من این فکر کردم برمیگردم به داد دو مرتبه بزن دست بزن به پستانگاب و, و شیر جریان پیدا میکنم میگه شاهد به دادگری برگشت و این چیز خیلی زیباییه این سیزا در شانومه هست و چقدر ما کمک میکنه و چقدر میتونه برای زندگی امروز ما مفید باشه خب اشبابه که شنیده باشتن شنونده های عزیز اون که دستان در, سندر، در سندر کار هستند در دمین های مختلف خونر که حتما شنونده ما هستید دقت بکنیم به این ما سعی میکنیم توی این برنامه شنخت رو بیشتر بکنیم و شما رو بیشتر آشنا کنیم آشنام هستید بیشتر آشنا باشید تلفن های برنامه ما 220-400-825 220-400-825 220-500-8 دیویست و بیست هنجا و هشت هشتصد سی هزار پانسد و پنجا و هشت هم شما پیامک ما هستش که شما میتونید تماس بگیرید و برامون پیامک بفرستید سوالات خودتون رو مطرح کنید در بار موضوع برنامه امشب آقای دوتر فریدون جنیدی هستن در باره شاهنامه فردوسی صحبت میکنید بحرام از پهلوان نامبردار زمان ساسانیان رو میگیریم اگر چندان عزیز به خاطر داشته باشند در برنامه گرشه بهرام پس از این که اون حدیه نادرخور بشترسید یعنی جامعه زنان و دوکتان نخریسی همون خوشید و در انجامن معیستان سپاه شرکت کرد و سپاهیان از این کار هرموز در حقیق بیزاری نشون دادن تا دا او رو در انجامن منیستان سپاه به پادشاهی برگذیدن و سپاه ایران حرکت کرد از خراسان به سوی تیزفون تا البته بری رسید و بعد به همه و بعد به طرف تیزفون در موقعی که بری رسید میخه درم رو فرمان داد دگرگم کنن یعنی موقعی که روی سکه میزنم میخه درم رو دگرگم کنم به نام خسرو رو که پسر هرموز بود و یه کیسه از این درمها به یک بازرگانی دادن گفتن برو به و اینا رو معامله کن یعنی صداگری کن و تا به دست هرموز برسه این درم ها و پریشانی در کار اونا پیش بیاد تا ما بریم جلو وقتی که به دست هرموز رسید فرمان داد که پسرشو بکشند ببینید این چه روابط نادرخوره پس که بین این پادشان و سراسانی و فرزندانشون بوده پدر بسید و فرزند و بخوشن و بعد یک یک کسی که معمول میشه بگه زهر بر من بده من شب برم توی خوراکش بیزم بمیره کسی آگاه میشه و خسرو خبر میده که این چنین واقعیست و خسرو میگوریزه به طرف آذربایجان. چون پیشتر تا این زمانهای اخیر حتی در اروپا هم طور که شاهزادگانه نو هر کدوم یک استانداری یه منطقهی بودن و خسرو از طرف پدرش استاندار اران امروز بود که حالا شده آزربایجان شمالی یعنی نزدیک ارمنستان این میگوریزد به طرف استالا استان خودش ولی میمونه در آتشکبه آزربایجان که امروز در نزدیکی تکاب آزربایجانه دیدی یا ندیدید یکی از بزرگترین آثار پاستونی جهانه و امروز بهش میگن تخت سلیمان البته ولی نه. امون جایگاه آتش الهی از گزارش هست که قیصر تیانه اون رو بنیان گذاشت خب وقتی که بحران خسرو نمیفهمی او عبدویای خسرو زندان رو میشکنن چون در زندان بودن میشکنن میون کور میکنن از تخت میکشن وزیر خبر که میرسه به خسرو او با اندک سپایی که همراس بوده بر می و میاد به پای تخت و با پدرش لیدار میکنه و ولی این به شما بگم که موقع گریز باز این فرمان میده که دایاش پدرش بکشن این این بیمهریه متقابل بین پدر رو فرزند این شگفتنگیزه این کرش کردن حالا پدر رو میگه بکشین یعنی دایی میگن بهش میگنه که اگر زنده بمونه ممکنه ما خطر داشته چون او نامه به غیصر بنویسه که این فرزند من گریخته بگیردنش بفرستیم در هر صورت پدر رو میکوشم با... و بحران نزدیک میشه سپاهاش به طرف تیسون پیشتر از این که خرمازو کشته باشن این رویداد خسرو میگه که با بزرگان سپاه خودش میگه که چی میبینید که من به طرف بحران برم با او سپه سالار ایران رو به تحفیز بکنم و با آشتی برگردیم اینا میگن خیلی خوبه ولی وقتی که میرن دو, دو طرف رود نهربان قرار میگیرن و مکالماتی که بینشون اتفاق میفته اینا به آشتی نمی که من حالا در بخش بعدی برنامه با شما درمیان میذارم 285-220-485-220-58-800-220-58-800-3558 شماره پیامک برنامه ما پنجر قاید رو به محطاب هست روابط بین بهرام و خسرو یه مطلبی پیش میاد که بهرام میگه که که من بهرام هستم که میخوام بیخ کیان را زبون برکنم به گفت به گفت بهرام شیروجنم که تخم کیان را زبون برکنم این یه اشاره ای داره برای که مادر نویسنده پهلوی باستانی همه جا میبینیم که از دو گروه در خدمتگزاران ایران یاد پیشه. یکی کیان یکی یلان مثلا فرض کنیم که در زبان که کابوس که بوده ولی چه یلانی ما داشتیم درستان فهلمان داشتیم گودرز سپه سالار کردستان درستان رو داشتیم تو سپاه سالار ایران خراسان بوده بهرام فرزند گودرز بوده از تیره های کرد لور بوده که الان دیگه ازش خبر نداریم زنگه شابران که خوزستان بوده همه اینا یلان ایران بودن در حقیقت پایه های تخت کیان ایران بر دوش یعنی از که در نویزه های باستانی همه جا میدیم که وقتی درود می‌فرستن، درود می‌فرستن به کیان و یلان حالا بهرام میگه من میخوام که تخم کیان رازو کن برکنم بزرگی من از پاس آرام به ری نمانم که باشد وسیع نام کی یعنی پادشان رو پا از این بردارم دیگه بعد از این در حقیقت اداره امور ایران به دست یلان و پهلوانان و سبه ایران باشید که اگر اینطور چه خوب ط پادشاهی که یه حکومت مردمی میشد همونطور که در زمان اشکانیان ما داشتیم که متاسفانه عدشیر هنوز درد نوردید و بظرف خیانت بهتون. آه یعنی حکومت میافتاد دست معیسونه مردم. اسم. مردم. ببینید هر استان برای خودش پادشاه خودش چقدر خوبه. من حالا مثال یه مثال میارم فرض کنید که استان سمنان برای خودش یه پادشاه از محل داشته باشه. یه حاکم یه پادشاه محلی باشه یعنی <تصفيق> استاد اتفاقی هم که حالا من غلط با توجه بيه. یعنی یه جور جمهوری یه جور جمهوریت حالا به شکل امروزیش حالا ما امروزیش. ولی <تصفيق> اون زمان چه اگه اون موقع یه موقع اتفاق می افتاد که چقد ما... حالا تو ما حالا نمونه هاش هم می تونیم بگیم توی مثلا توی روم توی یونان تو موقع ها مثلا ما با،, با،, با،, با توجه به این نگاه، اون موقع همین بود دیگه درون رو سر میکنن البته یونانیان رو ما خیلی دیر رسیدن به این جریان که ما از پیش دارد با حکومت یونانیان داشتیم حکومت یونانیان که با که آغاز شد که قباط در اساس کوی کباطه کوی کباطه یعنی پادشاه پادشاهان یعنی این یک پیشینه 5000 ساله داره و انجمن مهستان و ماش پیشینه 5000 ساله حفظ هزار ساله داره ولی در روم سنای روم ۲۰ خورده ای سات پیش این کار کرده و البته اروپاییهایی که واقعا با از نظر من عقب شده از فرهنگ و تاریخ جوان هستند تصور میکنن که سگالش درباره کارهای مملکتی برمیگرده به سنای روم در حالی که اونا ما نه تنها انجمن مستان کشور رو داشتیم انجمن هستان سپاه رو و استان رو در یکی از برنامه بعدلهبت می ساماین ها صحبت کرد. محتی از انجمن میستان سومر قصه‌های ما بود و از انجمن میسون و توران در شاهنامه خبر داریم بنابراین انجمن میسون و این شیوه حکمرانی که بر بنیاد در حقیقت قدرت بخششان به تیره ها و, و مرکزیت تیره ها در اوستان خودشون باشه یک پیشینه پنج هزار خورده خورده‌ای ساله داره که از همه جای جهان پیشتره در هر صورت بهرام پولوش بهرام میگه من ب... ب... این کار رو خواهم کرد برمیگردونن به یلان اکتیون میگیرم بر میاد ایران به پهلوانا به پهلوانا پ... البته شما هم بد بدونید که هر پهلوانی پهلوان پهلوی یعنی استان خودش بود پهلوان یعنی کسی که متعلق به یه استانیه وقتی که ما میگیم گودر پهلوان خرووران بود یعنی پهلوان کردستان و لرستان و آذربایجان بوده توس پهلوان خراسان بود یعنی تمام بخشای خراسان زیر نظر توس بوده به این ترتیب تمام مردم خودشون برای خودشون یک امیر مردمی هم داشته، قهرمان مردم بوده. بله. این طور بود که اون او نگه او نگهبان تخت پادشاهی ایران بودن. این طور خیلی بهتر میشد اگر بهران بود. متأسفانه ریسسوری که خسرو پرویز پیگیرش پیش برد این و بزرگ ما رو بر حقیقت ما کشتن از جهان بردن بردند که می رسیم پیش و یه جای دریغ و افسوسی برای ما باقی موند. Thank you. از ایشان داشتم که شاهنامه ایشان آیا الان در بازار پیدا میشه یا خیر و ضمناً سایر آثار حضرت دکتر جنیدی رو اگر میشه انایت کنن اسم ببرن که ما یادداشت کنیم و تهیه کنیم قسمت آخر عرض من است که آی دکتر جنیدی بفرمان که نامه رستم فرخزاد به برادر خودش که در اصطلاح کتاب های شاهنامه هست رو آیا اصیل می دانند یا خیر و راجع این اگر ممکنه چند کلمهی صحبت بفرماییم سفاس گذارم. درود بر شما از سفاس گذارم شاهنامه من نیست شاهنامه فردوسیه من خیلیش کردم البته انتشارش خیلی همگیر نیست آقای هدارتی شماره به شما خواهند داد که چطور اون کتاب ها رو من علاوه بر شانام تا کنون این افتخار داشتم که سیگ کتاب دیگه در زمینه های مختلف فرهنگ ایران بمیسم و پیرامون هشتاد کتاب رو که در بنیاد نشابور به چاب رسوندیم همه اینا رو خودم بیرایش کردم و بر همه اینا من خودم پیش کفتوارم اگر شما با بنیاد نشابور تماس بگیرید اونجا برای شما این فیرستار اینها رو میفرستن آرامتر آقای 24... آرامتر آقای آرامتر <تصفح> آقای <تصفح> آرامتر <تصفح> آقای آقا شما سره گردید 828 828 926 227 824 828 96, 27, 824. این شماره بنیاد نشابور هست سلام خدمت شما و سروران گرامی‌تون به جنبه تطبيق فن نو به دکتر چنیدی سوالی می‌نی که در شاهنامه از دای شا و خشایاشم اسم برده نشده اگه لطفاً بگین که به چه اسمی امام معرفی شدن ممنون می‌شم درود بر شما خوشا سبح نوروز بر همه ایرانیان این وضعیت شهر نسیمی که بر جان جهان میگذاره و از همه جا ملایمتر و بهتر و زیباتر در ایران در این سرزمینی که پای تخت جهان هست بر جان ایرانیان بهتر ببزد و شاد و برخوردار باشید از نوروز من در از برنامه های دیگه گفته بودم که از حقامانشیان در شاهنامه با نام داراب یاد شده و دارای دارایان داراب یعنی سلسله و دارای دارایان یعنی داریشیان از داریوش اول تا داریوش سوم. در کتیبه های داریوش اول همه جا به صورت فاعلی از داریوش با نام دره و اوش در دره و اوشی نام شده یاد شده و دو جا با عنوان مفعولی شده دره و اوم اگر ما این اوش و اوم فاعلی و مفعومی رو که از عدات صرفی هست پرداریم باقی اونه دره و, دره و, دره و دره خیلی یکسان دره و با این که اسکندر گوجستک تمام آثار از بین برد و دویران رو کشت و کتاب ها رو و مخازن رو همه رو از دست داد با این حال ما بعض از رودات ها زمان حقامانشان رو در شاهنامه میبینیم و اون این که مهمتر از همه اینی که میبینیم که از کندن کانال سوئز در شاهنامه خبر هست زهامون برای آمد به کوهی رسید یکی بیکران شهر دریا بدید بفرمود فرمود که از روم و از هندوان سرفراد کارازموده ردان گشایند انزان آب و دریا دری رسانند رودی به هر کشوری این کانال سهزه و خوشبختانه سنگنویشه داریوش سه تا از سنگنویشه داریوش در این انجریان که پرانسویان کانال سهزه میکندن پیدا شده و میبینیم که اینا رو نوشته یعنی این در ما اومده اینا همه رویداد اون زمانه من یه چیزی هم که برای تلفن پیشین از یاد بردم اینه که نامه فر... رستن فرخزاد بخش نظیمش از زییمش از خود فردوسیس است و ولی بخشی رو هم افزندگان به اون افوزن من در شاهنامه ویرایش خودم همه اینا رو نشون دادم که کدوم بخشها از خود رستن فراقزده و کدوم بخشها از افلندگانشون است. خدمت مجری محترم و مهمانی گرامی اگر شاهنامه افسانه نیست پس این تکلیف سی می شود؟ آیا سی هم واقعیت بوده؟ متشکرم بنده حسن بیانی هستم از اسفهان متشکرم خدا نگهدار. درود بر شما سی در عوستا بود سعینه و سعینه یعنی نماد پزشکی و چون میدونیم که مصریان هم که زیر نفوذ فرهنگی ایران بودن از این سعینه درست کردن سینوهه که اونم نماد پزشکیه و سعینه که در حقیقت پزشکی است اون هم در زادن زال بداده زال رودابه میرسه که با پزشکی اون رو به دنیا میارن و هم در هنگامی که رستم از اسفندیار زخم میبینه و آسیب میبینه مجددا میبینیم که سیمرغ مرق اون رو به بهبود میرسونه و در داستان اسفندیار رستم اسفندیار یک بیتی هست که خیلی شگفته و اونی که وقتی که رستم بهبود میابد از مدابای سیمق یعنی سعنه یعنی پزشک، که اون وقت وسالم میاد به میدان جنگ فردا اسفندیار میگوید که شنیدم که دستان جادو پرست و هر کار یازد به خورشید دست این محتسمن یک مفهوم خیلی خیلی بلند تاریخی است که من فعلا نمیتونم اونو بیان کنم شک... شکیبا باشید داستان ایران جلد اولش به امید خداوند تا 4 ماه دیگه به دست ایرانیان میرسه و این موضوع در جلد دوم هست که میبینید یه موقعیت شگفتیه بنابراین شاهنامه افسانه نیست و تاریخ <تصفيق> در برنامه که شاهنامه صحبت می گفتین که ترور درمانه چوبین در واقع دومین ترور سیاسی ایرانه ولی درمانه ترور سورنا توسط ارود دوم چیزی من گفتین اونجا ترور سیاسی تاریخ ایران هفت نمیشه اگر هم می کنیستم پس ایران به به نصب شاهنامه توضیح بدین که اینا به کدوم رو به تاریخ ایران با تشکر ا درود بر شما دختر ایران موقعی که درباره شاهنامه صحبت مصاحبه می‌کنین خودت به صدای خودت نیرو بدید خیلی بابا همین الان داشتم باوری دکتر جان شماتین خودت آروم‌تر وقتی در مورد شاهنامه وقتی در مورد شما دارم صحبت می‌کنم این سرزندگی و پرشور بودن در من هست بله می‌فرمایید صورت این ترور مفهومش اینه که یک کسی رو بدون به آگاهی به وسیله دست کسی دیگه در جای دیگه بکشن اینو بهش میگن ترور ولی خب در داستان ایران ممکنه که خیلی از پادشاهان سرداران رو کشته باشن این فرمان پادشاهی که اون اینو نمیشه گفت ترور ولی ترور مثل ترور بهرام پورگشاسه که رفته بود به خاوان چه پناهنده شده بود و اینا کسی فرستادن در پنهان حالا دربارشاد میکنه به این ترور میکن یعنی دنیا این رو ترور یعنی که کشته شدن پنهانی و در حقیقت بعد یک فرمان بدی که برای کشته شدن یک کسی به کار Thank mm -hmm. you. بر روی پنجره های روبه محتاب رو به رو میشنید و پنجره امشب باز شده بر روی شاهنامه فرداسی و آقای سا فیدون جنو و و دربارره بهرمم چوبین پرگوش که به غلط من اون میخواستم بگم به غلط گفتند داری بهرام پرگوش صحبت میکنین رسید به اینجا که گفت بهرام گفت من این کیان رو بر میدارم درسته حکومت رو دست پهلوانان می بعد چه اتفاق افتاد. خسرو وقتی که برگشت به, به بردوگاه خودش بردوگاه خودش اینکه در شهر در تیستون بود در انجمن بزرگان سپاه خودش پیشنهاد میده که من امشب شبیخون بزنم و این هم از خسرو برمیمد چون در فرنگ ایران شبیخون گناه بوده من به یک بار گفتم یا نه حالا باره باره می نه نه. نشیده نشیده. در ایران باستان که داده های خداوند همه مرسدهاش قرار می گرفته یکی از داده های خداوند خواب خواب بوده در یحسنا یک کتاب باستانی داریم که خواب آرامش بخش مزداداده رو می ستاییم این خواب ستوده می شده البته خوابی که دور از تشویش باشه دور از های حولناک باشه یعنی تشویش خود انسان از کارهای زشتی که کرده شب بر او ظاهر میشه. اون نه ولی معمولاً خداوند با بهش خواب به همه جانوران حتی گیاهان در زمستان اینا رو میخوابونه تا جان و نیروی دوباره بگیرن باز و مرتبه سر و بیدار بشن بنابراین در ایران باستان خواب رو مقدس میدونه مقدس که نباید به هم بخوره و اگر یه سپای خون بکنه در حقیقت میگفتن که این, این یوریش و حمله به سپاه دشمن نیست به دهش خداوندی است خواب و آرامشی است که خداوند به اونا داده ما اگر یورش بکنیم اون دهش خداوند مورد آسیب قرار گرفته و به خداوند بیعترامی کردیم ببینید که اندیشه نیا کانوم کجا بود و این خسرو که اندیشه ناراست داره میگه که شبه خون بزنم گستم و بین که دایی او بودن که قبلا حالا هموزو کشتون نه هنوز نکشتن آه. آه. آه. نه. بعد واقع نیست اینا میگن که این کار چی تو میگی که چطور تو این سخنه میگی از این سوی با اون سوی لشکریان همه با هم فامیل هستن همه قموخیش هستن من در یک جای دیگه باید به شما میگم که فامیل هم دقیقاً یه واژه ایرانیه ولی امروز در زبان فرانسه میگن فامیلی میگن این در حقیقت هست فام یعنی زن ایل یعنی ایل زن و برمیگرده به دوران مهدکودک اینه واجب... که اون یه بودی که ایل یعنی ایل یعنی ایل زن یعنی دودمان زن چون در دمان مادر مهدکودک تمام نجات ها به مادر برمی‌داشته یعنی فمینیست نه فمینیستم فمینیست اصلا فامیل فمینیست ف... نه فهم ز... ده... که حقیقت اینه که این واژه فامیل فهم... فهم. که در زبان فرانسه باقی مونده که در حقیقت ایرانیه معنیش در ایران معلوم میشه این یکی از کهن‌ترین وجوهایی که از جهان و باستان باقی مونده زمان مادر سالاری ما که فرزندان همه به مادر وابسته بودن یعنی امروز که پدر سالاری شده همه فرزندان به پدر وابسته هستن نه هست جواب با مادر ما مادر بوده بله اه. خب میگه که سپاه تو با لشکر دشمنت مثل پی... آستین با پیراهنت میگه این به این اینقدر نزدیک هستن و تو مطمئن باش که این کسانی که برنگیزی که برن و اون سپاه رو خون بهش بزنن خب این اونو خبردار میشن وقت پدر رازی نیمشه که فرزندش به خودش بمیره <تصفح> یا برعکس یه فرزند در اینجاست پدرش اونجاست این حاضر نیست که پدر خودش بگوشه تو مطمئن باش که این خبر به سپاه برام رسید تا حالا و بگوریست <تصفيق> بعد خوب سوپروایز میگوریز آهنگ گریز میگوریم مقدار تاج و لباس و چی و زر و گوهر و اینا برمی داره و در افسده های دوران ساسانی این اومده که میخواست بره بندوی و که با خال خالان یعنی دایی های او بود از ایستاده بودن گفت چرا ایستادین گفت بر اینکه این که این روی جوب کور بذاریم به ضرر تو خواهد بود و باید اینو بکشیم و اینو اونجا هرموسو کشتن و اوریختن بله. گریختند و بر راه به یک جای سومه اصرایی رسیدند و بعد از اونجا بالاخره به طرف روم و از قیسر روم همکاری خواستند برای برگشتن به بله. ایران و قیسر اول نمیخواست بده در سنای روم یعنی انجام میسان روم موضوع مطرح شد و بزرگان روم گفتن که تو فراموش کردی که از چقدر ستن با ما چقدر کشتار شده اینا تو میخواد به کسی یاری برسونی که نیاکان او اومدن ما رو اینجار کشتن ویران کردن موافقت نمیکنن و قیصر قاسخ میده که ما بزرگان روم موافقت نکردن او ببخشید اما این خسرو شخص عجیب بوده 16 ساله ده ساله خیلی سی... امروز سیاست مدار بوده من در یک جلسه فی مغز سیاستو که بده بازار فرهنگ ایران بله و یه همچین آدمی بوده سیاست بوده و پاسخش به فصل اینه که خیلی خوب اگر شما یاری نمی‌کنید راه خاقان گشاده است ما میریم از خاقان یاری می‌گیریم یعنی تهدید می‌کنه اینا رو به این ترتیب میگه دیگه من رفتم از خاقان یاری گرفتم و ایران رو گرفتم اون وقت خطر من رو پیش روی دارید وقتی خبر به قیصر میرسه قیصر میگه که خیلی خوب باز در انجامان مسافر میکنه اینجوری بهتری که به سپاه بدیم سپاه میدن و با اون سپاه حرکت میکنه میاد به طرف ایران برای جنگیدن با سپاه بحران که در ایران بوده. ده. این اتفاقات که حالا پی شما میفرمایید اون طرف ما داریم که بحران بحران که نمیتونست ساکت باشه که اون طرف بحران چه میکرد بحران پولگوشت چه میکرده؟ وقتی که خبر به بحران رسید آمادگی جنگ. آه. اعلام کرد منطقا... یعنی اونم آماده بود بهرام هر لحظه بود. من امروشب یک صحنه از زندگی بهرام به شما نشون میدم که شاهکاری که در هیچ جای جهان و حتی رستن پهلوان این کچنین کاری رو نکرده چه ش... بوده کار بهرام متاسفانه این ستاره درخشان خوشید درخشان پشت ابر پنهان شد که خوب حالا ما وقتی شانه رو با آین بخونیم این چهره های درخشان یکی یکی پر افتخار سلح شوره های, های ایران در اصل و زمانی که امپراتوری ایران شهر تیخسرو امپراتور ترکان شهر پراسیان آماده جنگ شده بودن و دو ارتش بزرگ در مقابل خمابنکو نیروپ یاده کردند. در توران و ایران آماده جنگ بودن و صدای شیفورهای رزمی دل در عروض دلاغران به تکن داره ارتشیان و ایران خودش را محیای کارزار بزرگی کردن و گویا اون روز کابوس وخشتناک مرگ در نظر تمام محیا مجسم شده بود علی؟ و یک ندای عالم زیری بود که مجده می داد آی ایرانی مردم فهد با شماست بحرام پرگوشست آماده رز شد بزرگانه کشور با او پهند دادن که نرو بذاره او بیاد سپال اما از نجا که بهرام قهلوان بود هیچ تردیدی به خود را نداد و سپایی هم تحت فرمان خودشی که همه با او در حقیقت در انجام نمیستان به پادشاه او رأی داده بودن اینا رو حرکت داد و در آذربایجان دو سپاه رو برو هم خراید در در جنگ های گذشته پادشاهان روی یک تپهی پشت آوردگاه می نشستن به دو دلیل که از بالا صحنه جنگ رو ببینن آریش در... نظامی رو آریش و بتونن به سردار خودشون خبر بدن که مثلا فسق از بال راست دشمن داره یه ستون حمله بکنه شما معاذب باشید و یا اینکه فلان حرکت در فلان در جبه دشمن دیده می شما معاذب باشید. و یکی همین که پهلوانان ما خودشون دوست داشتن نه مثلا برای صحنه جنگ این تنها ولی چون در در سپاه این بهرام بود که در دل سپاه بود و با سپاهیان حمله می‌کرد و کار می‌کرد دو سپاه رو رو هم قرار گرفتن و که از طرف امپراتور روم مأموریت پیدا کرده بود سپاه را از اون طرف سپاه بهرام داد و یک پهلوان رومی به نام کود که در شانومه به نام کوت رومی یاد شده اومد و پیش نیاتوس و خواست که یعنی اجازه خواست از نیاتوس و خواست رو که من برم اولین بار پهلوان این آینه جنگ های باستانه بوده که اول همه سپاه درگیری با هم درگیر نمیشدن یکی دو تا پهلوان میمدن یک ایک درزباز بایینی کردن و اون وقت اون پهلوانی که پیش میشد دل در حقیقت هم همرزمان و سپاه طرف خودشو رو به نیرو کرده بود و قوی میکرد برعکس اون طرفی که شکست خورده بودن ناراحت بودن و با دلی شکسته به جنگ میمدن در هر صورت اینجا میبینیم که چوبرخواست آواز و از دروی برفتن مردمان پرخواست چوی دل و جان خسرو و پرندیشه بود جهان پیش چشمشی که بیشی بودشون پهلوانی بحرام رو میدونستیم که بوکس است کوت از میان سپاه سه آهن به کردار و کوهی سیاه بی آمد تامیان و گروه چون از نزدیک شد بدان برج کو یعنی اونجایی که خسرو و نیاتوس نشسته بودن به خسرو چون گفت که سرفراز نگاه کن بدان بنده دیو ساز که با او بر از مندر آویختی که او کامرون شد تو بوغ ریختی یعنی در حقیقت افسوس کرد افسوسینی مسخره، افسوس به زبان اوست بود اپس اپا یعنی دور سوچ یعنی سوزوندن یعنی از دور سوزوندن یعنی کسی از نزدیک کسی رو نسوزوندن از راه دور نیشتدن یعنی گفتار بزن که ب... ریش خندن بهش میگن یعنی زخم یعنی به زخم کسی به جراحت کسی بخندن افسوس باد و عبر این جهان فسوس باده پیشار هرچه باد و باد این از رودکیه لا. و ما فکر کنیم افسوس یعنی نارد کنه در رو افسوس یعنی ریشخند کردن اینجا در حقیقت ریشخند میکنه که که با او به رزمندر آویختی چون او کامران شد تو بگریختی کنون تا بیاموزمش کارزار ببیند دل و رزم مردان کار چو بشنید خوسروز و کود این سخن دلش گشت پر درد رزم کهان چنین گفت پس کود را شهریار که رو پیش آن مرد بلغ سوار چون بهرام یک اسبی داشت ابلغ دم سیاه بود یعنی دیگه پس از رخش نام این اسب در شاهنون باشه مونده خیلی خوبی رو داشته عبلق دونسیا گفت پس کور ترا شهریار که رو پیش اون مرد عبلق سوار چوبینت ترا پیش تا به جنگ تو مگریز طالب نخواهی زره هم زنگ من گریختم از پهلوانی او بود تو مگریز آن تشبیخش میکنه نه, نه یعنی میگه میتونی نگریز آره با, با, با, با میکنی؟ بس. بذت خب البته کوت به طرف سپاه ایران حمله میکنه میاد جلو یعنی هم آورد میخواد من اینجا با این صحنه رو قبلا که به صحنه بپردازم یک در یه طرحی پیشتر بدم و اون که حمله با نیزه این چنین بوده که دو هم آورد بعد سر خودشون رو فرود ببرن پشت یال اسب از بین دو گوش اسب کمر هموورد رو نشونه بگیرن و در حالی که نیزه در دست دست به طرف راست بدنشون هست حمله ببرن طوری کنن که نوک نیزه بخوره به کمر کمرون چون او هم سرش رو پایین اگر نوک نیزه بخوره به کلا خود کلا خود نیزه رو در حقیقت پرتاب بکنه با ده. ده. باید من بخوره به کمر و این با, با توجه به که تو عصب دارم حرکت بکنه تاخت باید خوب خیلی انسان این نشانگیریت درقه باشه همین امروز هم در تیرندازی ها میگن که چشم تیرانداز شکاف مگسک نوخ، مگ... شکاف درجه نوخ مگسک زیر هدف یعنی این هنوزم هم در تیراندازی این هست یعنی که از لای دو گوش اسب کمر اون رو ببینن و سر نیزر رو با کمر اون میزون بکنن ام، به این ترتیب ام، تو در یورش با نیزه کسی نباید روی زین اصطور بشینه باید بلگه... همشنجی... خم بشه که نیزه یا بخوره به کلا خودش یا به شونه که نیزه در حقیقت حرکت بکنه پرتشه یه طرف بگه اما اگه کسی روی زین اصطور بشینه این خطر هست که نیزه اگر بخوره به حل جا اگر به زیره هم بخوره و فروه هم نره میتونه اصطوره هم رو بشکنه یکی رو سوار یا سوار رو در حقیقت یه سوار معمولی باشه نه پهلوانی مثل مهران و گوش هست ولی این من ندیدم در جنگ های باستانی که من تو با این جنگ ها زندگی کردم حالا کم و بیش کم کم خواهیدید که من چقدر سپاه با سپاه زیشتم چقدر شبها تو خواب اینا رو کردم چقدر اندیشه کردم تا ببینم آرایش رزم چطور بوده تا اینا بتونم در ویرش خودم به کار ببرم این تنها وهرام پروش هسته نشاست شمشیر کشی بیرو این جواب نیزه نیست برای کی میدونید شمشیر خط اکثر مثلا به مثلا یه رش مثلا یه مثلا نیم گز مثلا مثلا 60 سانتی متر باشه 70 سانتی متر باشه نیزه میدونید دو 2 متر یعنی دو گرز باستانی یعنی دو متر 16 سانتی متر اندازش بوده خب این نمیتونه پاسخون رو بده از طرف این نشست روی است این کار خیلی خطرناکه بلکه نیزه میزنه به یه جایی و این رو میکشه و از طرف این کشید و سپر رو به این دست گرفت وقتی که این کار انجام شد بر شانومه اشاره دیگه این همده یعنی گوگندگان شانومه این گمان رو داشتن که خواننده اینو میفهمه که چه کار عجیبیه بدونین که اشاره ای بکنن تاکیی رو شکنن فردوسی هم همین رو همطور نوشته اما اینا رو که من گفتم برای که میدونید که چقدر مهمه که چون بشنید بحرام تیغ از نیون بر و چون چون بر و چون باد, چون برا چون باد و برگ نام چون خسرو رو چون دید بر خس یک بار از جای جست میدونید برای فکر کرد که بهران میخواد چکار کنه. برایکه این آینه نبرد با نیزه نبود از جان بلند شد تو خسرو چنان دید بر پای خواست از آن کوخسر سر برآورد راست به کوت و به بهرام چشم دو دیده پر از آب و دل خشم میگریست این چی میشه سر این جنگ چیه چون رومی به نیزه در آمد جای جهانجوی بر جای بفشارد پایا به بف پای یعنی بهرام ایستاد یعنی پای و فشار داد روی دکاب پاشو, پاشو فشار داد به روی اندراور جنگی سفر سفرش رو گرفت چلوش چون ایزه نیامد آمد بر او کارگر یکی تیخ زد و سر و گردنش که تا سینه ببرید تیره تنش این چه کرد؟ حرکت نجد ایستاد منطقه چقدر باید یک پهلوان این اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه یک پهلوان به نیروی مچ و سائد خودش. متکی باشه که اون اص... اصبیتی با تاخت میاد وقتی که نیزره میزنن یک حرکتی مثل این حرکت رو... اه... چی میگن برای ژاپنی که اه... آه. آه. کاراته مثلا یه چیزی خیلی سرعت میزنن یعنی درسته, درسته که بلده. این حرکت بلده. دست خیلی مهمه بلده. این با این حرکت دست امروزم در یه تکان شدیده یه تکان شدیده از... این این تکان شدید از نیروی اصط بیشتره یعنی از سرعت اصط بیشتره در لحظه وقتی که سقوط بدن این خیلی خیلی سرعت زیاد داره هر دوتا این این سرعتو با هم جمع میشه بعد اون وقت این موج چقدر باید قوی باشه که نيزه میخوره بهش به این سو گرایش نکنه به اون سو گرایش نکنه چقدر چه ای ساده گی اونم چند کسی نبود اون یه قهرمان روم بوده دیگه بله یه عادی که نبوده یه سرباز عادی که نبوده حالا ما نباید این, این موچ این دست رو میبوسیدیم حیف حیف که لحظات خیلی خوبی در زندگی ما پیش اومد و با این خیانت خیالت بازشوهان ما از بین رفت سرگذشتی است که برای روان و آگاه ایران فیتوسی رخ داد و اون در گذشت فرزند جوانش بود و ما به اردنیاز و برای شادی روان اون فرزند که جان خودشو برای پدر از دست داد و برای اون پدر که پدر و آموزگار مربی و روح و روان ایرانیان است، این چند به تو میخونیم مرا سال بگذشت بر شست و پنج نه خوب گر بیازم به مگر بحره برگیرم از پند خیش براندیشم از مرگ فرزند خیش مرا بود نوبت به جوان زی دردش منم چون تنی بیروان شتاوان همی تا مگر یاومش چو یاوام به پیاره بشتاوامش که نوبت مرا بود بی من چرا رفتی و بردی آرام من زبط تو بودی مرا دست گیر چرا راه جستی زهن راه پیر مگر همراهان جوان یافتی که از پیش من تیز بشتافتی جوان را چو شد سال بر سی و هفت بر آرزو یافت گیتی و رفت برفت و خم و رنجش ای در بماند دلو دیده مند بخوندر نشاند کنون او سوی روشنایی رسید پدر رو همین جای خواهد گذید، مرا شست و پنج و برا سی و هفت، نفرسید از این پیر رو تنها برفت، من در شتاب و منم در درنگ کرده کردارها تا چهایت بچن. کو کتو رو بی باید میدسته امروز برای نبرد فردا آماده میشن اما گستن و بندو شبانه چاوش میشستن به سپاه بهرام که شما هر کدومتون بیاید به درگاه به سپاه خسرو خسرو شما رو میبخشه خواهی نخواهی یه نفر دو نفر پن نفر بلند شدانه کم کم نسی که سیل رو میفته حرکت کردن کسیری از سپاهیان و بحرام رفتن پیوستن به سپاه خوز رو صبح وقتی که بحرام بیدار شد دید چنین از گفتی که جای درهنی نیست جا باید رفت لا. با ویژگان خودش به سوی ری رفت و مدتی در ری که شهر خودش بود زیست و بعد از اونجور کشید به طرف خاقان مطلبی که من پیشتر گفته بودم که اون داستان ها افزودهی دا دستگاه ساسانی بود که او تازیانه زده به خاقان و همچید چیزی نیست و خاقان رو دوست میداشته و در آخرین نامش هم حتی گفت که من که با تو هرگز نکردم ولی همه راستی چستم و بخردی پس این نمیتونه تازیانه زده باشه به خاقان همین دلیلی که شما میینید که وقتی که به طرف خاقان میرسه که چون او سوی شهر نزد لیران و شیران رسید بیدار بیداردل ده هزار پذیره شدندش گذیده سوار یعنی پسیش خواقان اعترام داره بزرگ داشت داره برای بهرام که ده هزار سوار میفرسته به پذیره یعنی این شوخی نیست این کار ده هزار سوار به پذیره بهرام چند یک ماه بین راه باشند تا به مرز برسند باید از یک در آزمایش عظیمه یه داشککشی خودش به این نهایت احترام و بح... خاقان رو به بهرام میرزینش بعد که بهرام میرسه میگه که من این طور شد و حالا میخوام انجا اگر اجازه میدی که من از اینجا برم یه سرزمینی برای خودم پیدا کنم که در اونجا زندگی کنم و خاقان میگه نه به هیچ روی این بشتا داره نقط مهمان من هستی و در همین جا رو تو جا میدم به تو امکان میدم و بهرام وقتی که در اونجا مستقر شد هیچ کاری غیر از شراب و غیر از ببخشید شکر و نخجیر رو اینها نداشت و یعنی زندگی راحت و آسوده ای داشت بعد وقتی که در دربار خاقان می نشست می گید که یه پیریه به نام مقاطوره این پیر از ذره نجات بر خاقان برتر بوده و وقتی که می میده و دست می گذاشته روی لبهای خودش و خاغان ناچار بوده که هزار دینار دیگه به این بدن وقتی دو روز سه روز پنج روز تکرار میشه و بهرام این موضوع میبینه از خاغان برسه که تو چرا به اگر تمام توران باشه کانزر بلاخره تمام میشه تو چرا این کار میکنی هر روز این میاد با اخ اطبعا با خندم نمیمده با اخ میمده با اخ میمده در چون گزه جلده ها هزار دینار بهش میدادن بر میگشته از استکیب اسم زده نمی‌افت. چرا این کاری کردی؟ بعد که میگه که این آین ماست. او از نجات از من برتره. من درسته که من خواغان هستم ولی او سه از من بیشتره و از در نجاتم از من برتره. ما بودیم. باید اگر ندیم سپاهیان زیردستش او شورش می‌کنه و کار رو بر ما تنگ می‌کنه. بعدو میگه که می‌خواد من تو رو نجات دادم از دستمون. این شعر رو میخونم تا ببینید چه است از نظر شیر اگر زور راهانم تو را شایدت بایدت اگر من تو را از از او را راهانم باید رست بر تو اگر زور تو, را... تو را بایدت اگر بایدت... ویژه آزرم او بایدت یا احترام و او رو باید ل... نگهداری به ویژه این... این یکی از شاکارهای سخن جهان اگر شما حالا این رو پخش کنید به صورت نصر در بیارید میبینید که چقدر ساده و چقدر مختصر و ریز فیدوسی این گفتار رفته اگر زور رو تو ترا شایدد اگر ویژه آزرم او بایدد و اگر تو این کار کنی که منو نجات دادی و فردا وقتی مقاتوره میاد آن شب و با امداد پگاه به آمد مقاتوره نزدیک شاه جهاندار خان بدون ننگرید نه گفتار آن ترکی جنگی شنید رخا خان مقاتوره آمد به خشم یه بر شفت ی این یعنی ناگاه ها یه بار دیگه گووی و بر که امروز یک کقافل که میگیم یا یک که خوردن این از اینجا میاد یک براش شفت و بخشاد چشم به خواقان چون این گفت که اینام دار چرا گشتن روز پیش تو خار به دو گفتبحرام که جنگ جوی چرا تیز گشتی بدین گفت و گویی. چ برد راه و فرمان من خرد راه نپیچ از پیمان من نمانم که آیی تو حواان داد تناسان دهی گنج او را بباد بران نه که هستی تو سیست سوار به رزمندرون شیز جویی شکار نه که هر با پگاه به خروار دینار خواهی زشا مقاتوره بشنید گفتار اوی سرش گشت پرکین ز آزار اوی به خشم و به تندی بیازید چنگ ز تکش برابر تیری خدنگ به بهرام گفت این نشان من است به رزمندرون ترجمان من است ببینید این قرون که اشرافزادگان اینها در مثلا قرون وسطی خودشون میکردن برای دوئل یه چیزی مثلا آه. یه دستکش می‌بیدین شو اینجا یهو می‌بینین سر جهان و كهن به جور دیگه است یعنی تیر نمیارن ببین این تیر نشانه منه بگیر بهتره بگید با من بجنگی با دادا تو با یعنی اعدام آمادگی برای جنگ تن به تن بله آه. چو فردا بیایی بدین بارگاه همین پیکان ما را نگاه این پیکان همراهت باشه چو بشنید بهرام شد تیز چنگ تیر پولاد, پولاد پیکان خدنگ به دو داد و گفت گفتا که این یادگار به دارو ببین تا که آهد بکار مقاطور از پیش خواهان طرف بیامد سوی خرگه خیش تفت شب شد و صبح شد مخاطره حرکت کرد به طرف میدان جلو کاخ و بیشتر از این که بیاد به بر... چون احتمال میداد که ممکنی یه وقت هم شکست بخوره به برادرش گفت که پاشو از زیر به عصب ببنده به تنه اسب ببنده از نیفته که اگر شکست خور از عصب نیفته یعنی این در حقیقت آبرو خواهی برای خودش بوده آبرو داری برای خودش بوده خب مخاطوره چون شد به نبرد ها زهامون به ابرنده را برگردی با حرکت اسب گردو خاک برنگی خود به بهرام گردنکش آواز داد که اکنون ز مردی چه داری بیاد تو باشی بدین جنگ بر پیش دست اگر شیر دل تو که خاقان اینجا گر یعنی یا قبلا گفتم گر تو پیش دستی میکنی یا من به دو گفت بهرام پیشی تو کن کجا پی تو افکنده‌ای سخن تو تو جنگ کار هستی تو, دو هل... تو, تو دو دو اعلام می‌کنی مردانگیه از هر دو سو اینا به شما بگن حتی اون می‌تونی سینو نبرسه هر دو با هم جنگ ب... تیر بزنن یا پشت تکی بکنه من یه قهرمان بوده دیگه بله با. اول میگه تو می‌خوای ولی بحرام میگه نه تو این خیلی اتکاب به نفس می‌خواد این همون بحرامیه که در حمله نیروی کوسرویی خم نشد یه نیروی بمج دست خودش استوار بود و کوک کوتر... مرشمشیر جنب مرشمشیر زد زره کوترومی رو از استا سینه برید از گردن تا سینه برید شوخینی نیست آهن اون همه اون شمشیر چی بوده که اون نیروی بازو چی بود که تا سینه چیکافت؟ به در صورت زه و تیر بگرفت شادان بدست یعنی مغتورشون موت گفت تو پیش دستی بکن زه و تیر بگرفت شادان بدست چون شد غرق پیگانش بکشات شست یعنی میکشیدن پیگان قرق میشد در توی کمان یعنی به درون کمان نه بکشات شست یعنی چون تیر رو با شست بره. و در انگوشت دست راست که خمشده میگیرن چون سید با اونجا روحا کرد بزرد بر کمربند مرد سوار نسفت آهن از آهن آبدار سفتن نهی سراخ کردن سنبه هم امروز میگیم از همینیش هست آن سنبه هم ایشی سفته یک میلیلی که توی چیزی بکنه سراخ کردن تو سراخ فرو کردنست سفتنه آزم حتی ما داستانی داریم در متونه بلخی و خارزمی الان یاد ندارم که داستانیه مردی است که مروارید صنم به یعنی مروارید رو سوراخ می‌کنه که اینا رو به نخ بکشن برگردن آویزون بکنن داستان شقدیه بزت بر لندن مرد سوار ناخوفت آهن از آهن آبدار مقاصور پنداش کوش و تباه خورشیدو برگشتن قزنگو به دو گفت بهرام که جنگ جوی بکشتی رو سوز خرگه ماپو نگه کرد جوشنگزاری خدنگ یعنی خدنگ یعنی راست مثلا خدنگ از ریشه خط گرفته شده. خد این که ما در عربی میگیم خد با تای تا دستان نشیم خد فارسی در واژه خد و خال باقی مونده هنوز خد و خال یعنی خد یعنی خد های ابرو و چشم و لب و این ها و خالم یعنی خالی که روی صرف هست در عربی تبدیل شد به تبدیل شد دال تبدیل شد به ت دست دار همطور که مثلا درز فارسی تبدیل شد در عربی ترز و ترز قبایی مترز یعنی قبایی که درز داشته بشید. چون این دوختن لباس های هیچ جای جهان جا نبوده در اروپا هیچ جای جا فقط ما بودیم که درز رو اختراع کردیم و دوختیم لباس رو چون اروپایی که برهنه بودن اعراب هم یه چیزی روش داشتیم هندوی های که میبینیم نیمه برهن, برهن اینی که قبایی متَرز یعنی قبایی که دخته شده باشه برای عرب خیلی این جالب بوده که قبوای متَرز باشه یعنی درز باشه حالا درز رو که کردن طرز متاسفانه همون ترز برگشت به زبان فارسی ما اونو به معنی شیوه بکنیم برین مثل این ترز مثلا این طرز رفتار این میدونید چرا این می میگن برای که تر هستن ایت الان در تاجیکستان خاصی شیری رو که میخونن اتر اتر اتر, اتر, اتر یعنی اینطوری اینطوری میکنن من در گفتار دامغانی های پنجه سال پیش هم میشتن که میگفتن تر به جای طور بگفتن تر اون وقت باید کسانی که تحصیل کردن یعنی شیش ابتداتای خود بودن فکر کردن تر تناس های گفتن تره یعنی هیجیمی هم بهش میچست می در حال این خد فارسیه و خد نیست خده خده با داله با داله با تای محلط نیست بله با تای محلط نیست پس در میان سوار دلیر سپه شد از رزم و دینار سیر مقاطوره چون جنگ را برنشست برادر میانش بزین بر ببست به روی آمد دا پرا همان زین توزی شدش جای خواب مرد و وقتی که خاقان فرستاد به طرف او گفت نه نفرست کارش تموم شد بحران کارش تموم شد وقتی اینا این بزرگی و بزرگواری را از بحران دیدن اونا خودشون خواستار این بحرام شدن به دامادی یعنی دختری داریم تو دختر ما رو بگیر و با ما پیوسته باش خیلی لطف کردید ما زمان زیادی نداریم چون تلفن های زیادی ما داریم بخوایم پخش کنیم من نمیدونم این بخش باز هم میمونه قصه بحرام میمونه بحرام پول و کمش میمونه مرگ این جوان, جوان مرد ایجانی را بررسی کنیم اشاره در هفته آینده این بخش را بررسی میکنیم تلفون های برنامه آماده هست که شما با ما تماس گرفتید با تلفن‌های های 222-485 222-58 800 3558 شماره پیامک که شما برنامه پنجره های روی محتاب رو میشنمید و آقای دکتر فریدون جنگی در باره شاهرامه فردوسی صحبت میکنم پیژنگی در تمام مطالبی که در این مدت رهبرین استفاده طراوانی جان کرده‌اند ولی در هیچ کدام از آنها صحبت از تاریخ نشده نه به میلادی نه به شمسی نه به قمری در هیچ کدام تاریخی ذکر نشده خیلی ممنون میشم در این مورد هم توضیح کافی بفرمایید با یک اون استفاضه مثلی از عراق زنده باشین شب بخیر شاد باشید ما هنوز زنده ایم در خدمت شما و ایرانیان و کمکم کم به مطالبی می که نیشگفتی های تاریخ ایران در اون بررسی میشه و مطمئن باشید تاریخ ما انقدر آلمانه و آگاهانه پیریزی شده و سالها شناخته شده که این تواریخ کوتاه نادرخور غربی به پای اون نمی رسن. اما ما در برنامه های آینده وقتی که بخوایم که تفسیر رویدات های شاهنم بکنیم تفسیر رویدات های شاهنم بکنیم اون وقت به ای از زمان سنجی هم رسیم که امیدواریم که شما هم از ما راضی باشید سلام خسر تکرار میشه در سنامه در ابیات افسوزه ما از گرشاستی چند بیت داریم که ابیات است اما خب میدونید که نام تکرار میشه و ها گشتاس شما گفتید اگر گشتاست واسه نه اینو در حقت هرسولد دروغ تاریخی درست کرد و گفت این دو تا یکی هستند بنابراین تاریخ زرتوش رو عبور به حد کوروش تا اینکه تاریخ موسو رو ببره پیشتر نه چنین چیزی نیست اون گشتاس پ... پیشساز بنی پدر داریوش غیر از گشتاس شاه کیانی است باست از من خوبتون از استاد جنیدی می که در مورد جشن فروردینگان توضیح بدن زمنان بیستون فروردین رادروزه استاد بزرگ جنیدی خوشت ببار با تشکر شاد باشید خوب شد گفتیم <تصفيق> در تو مبارک باشید بیست فروردین لذ روز شماست. مبارک باشه من نمیدونم شما باشید. این دوستا اون گفتن ممنون از شما. سلامتی خوب و اشعاری که فرمودید ان شاءالله سال‌های سال زنده باشید. بفرمایید. فراهر یعنی که نیرو هست که از طرف خداوند در اندیشه ایرانی و فرهنگ ایرانی از طرف خداوند به ها داده میشه و بعد در مدت زندگی همراه با انسان هست و پس از مرگ پاکو و منظف به سوی جهان منویب برمیگرده و اون غیر از نیروی روان انسان هاست و همونطور که ما هر روزی یک نامی داشتیم روز نوزومه هر ماه نامش بود فروردین که در حقیقت به نام همون فروهر است اون وقت در عبصبت فروه روز فروردین از ماه فروردین بنابراین جشن میشه جشن فروردین کن کشت نیست که بیاد روان و فروهر نیاکان ارجمندمون باشیم. از آغاز بیاد روان و فروهر باشکوه فردوسی پدر ایرانیان و فروهر و روان همه نیاکان ما که اینطور جانبازی کردند و اینطور سرفرازی کردند و اینطور جهان رو آبادان کردند تا به دست فرزندان برسه. امیدوارم که فرزندان هم بتونن به این راه ها ادامه بدن. ببینم رستم واقعیت دارد یا یک افسانه است چرا که در شاهنامه من دیدم حکیم چوس نوشته رستم یلی بود در سیستان منش آوریدم به این تاستان و بعد از اون آیا نوی نتیجه ای از رستم باقی مانده یا نه و اون زمان با گویش بلوچی صحبت میکردن ببینم تمام ایران صحبت میکردن یا همون منطقه و بعد از اون میږم جنگ رستم و سندیار توک منطقه لارستان بودند. چرا که در شاهنامه هست به تنگ کلان و فرشتجان ما داریم. منطقه جویم و بنارویه هنوز تنگ پلان و هم هست و بعد از اون میخواستم از آقای جونهگی بپرسم ببینم این زبان عبستایی میبین که زبان منطقه لارستان فارس بوده ما میگیم زبان عچومی اگر فرصت هست همین امشب جواب ما را بدن آقای جونهگی با سپاس ریاضی هستم از منطقه لارستان بلارستان نگه،, نگه دارنده بسیاری زبانهای باستانی که ریشه در همون زبانهای باستان داره منتاج شما جان من اینقدر پرسش های فراوان کردی که من نمیسی نمینا را را تفیق کنم و روستم چطور افثان از اون شعر از افزاده های برای خراب کردن پا... پایگاه رستن پهلوان ایران اصلا اون شعر از فدوسی نیست فلدوسی خودش میگه که جهان آفرین تا جهان آفرید سواروریی چستتم نیامد بدید شما چطور این شعر رو از فدوسی نمیدونید اون شعری که و به شنامه که منش کردم رستم داستان یا آورین به دی داستان نه عزیز من از صدای شما معلومه که روزگار برتنجانتون گذشته پیر هستید درود من به شما شاد باشید که با شنامه زندگیخواهیین اما نه اون شر از فلدوسی نیست زود گذشت آقای دکتر فیدون جویدی اصلا زمان رو حس نکردیم و امروز هم تمام شد و مان آخر دسته بهرام پور گوشت این پهلوان بزرگ ایرانی سپاسگزارم از شما آقای دکتر فیدون جویدی ان شاء یک کم هفته آینده ما در خواهیم بود تولدتتون مبارک باشه 20 فروردین تولد آقای دکتر سیدون جنیدیت نمیدونم چند ساله میشی نمیخوام الان زوبالش بکنم نه چرا من, من اتفاقا برعکس هر کی سن بالاتر میاد خودم رو صرف راست‌تر میبینم نه را من میبینم یه باز مثلا سعدی گفته که دریق عهد جوانی دور برنایی نه چینی نیست من این بیشت فروردین وارد 72 کمیونیت سال میشم ولی همین اکنون روزی صد جفت میل باستانه میگیرم ماشاءالله خیلی لطف کردی خیلی روز باشید, باشید, بشید بشید بشید باشید همکاران من در این برنامه تایی کننده سرکار خانم ارزم و سادات دلبری همهنگی برنامه خانم سایلا رضایی صدا برداران خانم نشیبا وقای نورولای هیدری اعتباطات آقایان حسینی و کاظمی. همانگی پخش آقای ابراهیمی من هم حمید رزا هدایتی را سردبیر و مجری این برنامه فردا شب آقای قطب دین صادقی درباره هنر و های این, ها این سرزمین صحبت میکند خوش و خورم و سلامت باشید خدا پدرود